آیا این درست هست که میگن شهادت همان زمانی اتفاق میفته که مرگ باید اتفاق بیفته یعنی شهادت زودتر از زمان مرگ حتمی اتفاق نمیفته و از عمر فرد کم نمی کنه نه ما یه عجل معلق داریم یه عجل حتمی عجل حتمی همونیه که حتما به موقعش در زمان خودش پیش میاد گاهی بازی عجل ها زودتر پیش میاد معلق یعنی آویزونه مثلا اینکه میگن صدقه بزید بلاهای آسمانی و زمینی دفع میشه از کنار دیوار خرابی انسان میگذارید و په میشه بشه و همثال این ها این بحث صدقه دعا پرخومه به دیگران که عجل آدم رو اون چه مقدر هست میاره و عجل معلق رو پیش نمیاره نشون میده که مرگ میتونه تقدم و تأخر پیدا کنه به دعا صدقه دادن شهادت هم یک فوز عظیمه خیلی فوز است و بعد انسان از خدا یکی از تغازه های مهمش این باشه که انشاءالله مرگمون به شهادت باشه انشاءالله